سلام دوستان همراه کانال هزار افسان امیدوارم حالتون عالی باشه از کتابی که مشخصاتشو گفتم داستانی رو بهتون تقدیم میکنم به نام پری سپیده دم یکی بود یکی نبود اون چه باید اتفاق میافتاد اتفاق افتاد و اگه اتفاق نیافتاده بود این قسم هرگز سر زبونا نمیافتاد روزگاری امپراتوری بود بزرگ و قدرتمند اون بر قلم بسیار وسیع که کسی نمیدونست اول و آخرش کجاست فرمان می روند اگه کسی نمیتونست وسعت دقیق قلم روی تحت فرمان رواییشو بگه از این موضوع باخبر بود که چشم راست امپراتور می خندید و چشم چپش اشک می ریخت. یکی یا دو مرد سرشناس جرأت کردن و پیش امپراتور رفتن و از اون علت اونا پرسیدن. اما اون فقط خندید و چیزی نگفت. دشمنی مرگ باره بین اون دو چشم خندون و گریون رازی بود که خود امپراتور می دونست. با گذشت زمان پسرای امپراتور بزرگ می شدن. چه پسرایی؟ هرسه مثل ستارگان بامدادی در پهنه آسمون آبی بودند فلوری بزرگترین پسر بلند قد و چارشونه بود و هیچ مردی تو این کشور به قد و قبارش پیدا نمیشد. کاستان پسر دوم کاملا متفاوت بود. اون قامت و کمبونیه بود اما دستای قوی و موچای قوی تر داشت. هترو سومین و کچیکترین پسر هر قد بلند و باریک اندام بود و بیشتر به دختر شباهت داشت تا پسر. اون کم حرف بود اما پیوسته می خندید و آواز میخوند. از صبح تا شب می خندید. اصلا جدی نبود. اما وقتی دستی به موهای روی پیشونیش میکشید هواسش رو جمع می کرد. با این کار قیاپش تا حدودی پیر نشون میداد. اون اجازه داشت تو جلسه های شورای پدرش حضور داشته باشه. روزی پترو به برادر بزرگترش گفت فلوری تو بزرگ شدی. میشه پدر برو به پرست چرا یه چشمش میخنده و چشم دیگش میگریه. اما فلوری چون اون کاری نکرد. اون به تجربه آموخته بود که این سوال همیشه باعث خشم امپراتور میشه. بعد پترو نزد کاستان رفت، اما اونم تن به این کار نداد. بالاخره پترو به این نتیجه رسید. خب، حالا که همه نمی بگم اونم باید خودم این کار بکنم. اون بیونکه که نتیجه گیرش و سبک و سنگین کنه، یه راست نزد پدرش رفت و این موضوع رو با اون در میون نهاد. امپراتور از شدت خشم فریاد برآورد، ای کاش کور می شدی این موضوع به تو چه ربطی داره و دو سیلی حسابی به اون زد. پترو نزد برادرش بازگشت و اون چه اتفاق افتاده بود تعریف کرد. اما مدت زمانی از این اتفاق نگذشت که عشق چشم چپ پدر کمتر و چشم راستش پرخنده تر شد. پسر با خودش فکر کرد: نکنه این وزن به سوال من مربوط میشه. دوباره میپرسم دوتا سیلی که چیزی نیست. اون بار دومم سوالش رو تکرار کرد اما پاسخ پدر مثل دفعه اول بود. مدتی بعد چشم چپ فقط گاه گاهی گریه میکرد در حالی که چشم راست ده سال جوان تر شده بود پترو به فکر فرو رفت. واقعا باید همونطور که فکر میکردم باشه. حالا میدونم چی کار باید بکنم. اونقدر میرم و سآلم و تکرار میکنم و سیلی میخورم تا هر دو چشم با هم بخندن. گفتن همون رو عمل کردن به اون همون. پترو هرگز به خودش دروغ نمیگفت. امپراتور در حالی که هر دو چشمش میخندید با صدای بلند گفت. هترو، پسر عزیزم، مثل این که این موضوع ذهن تو مشغول کرده. خب، تو رو تو رازم شریک می کنم. وقتی به سه پسرم که قوی و زیبا اندام هستن نگاه میکنم چشم راستم می خنده و چشم دیگم گریه می کنه. چون که می ترسم که پس از مردنم شما نتونید با هم امپراتوری رو اداره کنید و اون از شر دشمناش محافظت کنید. اما اگه بتونید از چشمه پریه سپیده برام آب بیارید تا چشمم رو بشورم هر دو چشمم تا زمانی که زنده ام چون که میدونم که پسرام دلیرن من میتونم هر دشمنی رو سر جای خودش بشونن پس از سخنه امپراتور پترو کالایش برداشت و به سراغ برادراش رفت سمرد جوان با هم مشورت، و درباره این موضوع صحبت کردند و مثل تمام برادرای دیگه جوانه به کارو سنجیدند در پایان به نتیجه ای رسیدند فلوری به عنوان بزرگترین برادر به استبل رفت و بهترین و قشنگترین اسب رو انتخاب کرد او اسبو زین کرد و وقتی آماده شد از پدر اجازه سفر گرفت اون به برادرش گفت من همین الان به راه میافتم اگه پس از یک سال و یک ماه و یک هفته و یک روز با آب چشمه پریه سپیده باز نگشتم کاستان بهتره برای پیدا کردنم دست به کار شه. با گفتن این حرف به راه افتاد و بیرون قصر از نظرها دور شد. اون سه روز و سه شب افسار نکشید و پیوسته به جلو روند. از مثل شبه از فراز کوها گذشت و دره ها رو پشت سر نهاد تا سبارش رو به مرزای قلم امپراتوری رسند. دور تا دور راه رو خندقی گرفته بود و فقط یه پل وجود داشت که راه گذر از خندق بود. فلوری فوراً به سوی پول روند و با رسیدن به اون نگاهی به اطراف انداخت. بعد به پشت سر، به سرزمین زادگاهش در دوردستها نگاه کرد، وقتی سرش رو برگردون کنار خودش اژدهایی دید، اژدها نگو بلا بگو، سه سر داشت و سه صورت هراسناک، هر سه دهنش مثل دروازه باز بودن، به طوری که آواره بالایی به آسمون و آواره پایینی به زمین میرسیدند. با دیدن چلون منظره هراسانگیزی، اصلا فکر مبارزه به ذهن فلوری نرسید. عصبشو هی کرد و مثل برق از اونجا گریخت. براش مهم نبود که به کجا فرار میکنه. اجده آهی کشید و بی اون که ردی از خودش به جا بذاره ناپدید شد. یه هفته گذشت. فلوری به خونه باز نگشت. دو هفته گذشت و خبری از اون نشد. پس از یه ماه کاستان به استبل رفت تا برای خودش اسب مناسبی جستجو کنه. زمانی که سال، ماه، هفته و یه روز به سر اومد، کاستان سوار اسبی شد که در طول این مدت انتخاب کرده بود. اون به سراغ برادر کوچیکتر رفت و گفت اگه شکست خوردم دنبالم بیا و در جاده که فلوری از اون رفته بود به پیش تاخت اون بار اجده های روی پل، بسیار هرسنگیزتر و سهسرش بسیار وحشتناکتر از قبل بود و باعث شد که قهرمان جوون در مقایسه با برادرش تندتر از جهش برق از معرکه فرار کنه. تا این زمان نه از اون و نه از فلوری هیچ خبری شنیده نشد و پترو تنها مونده بود. روزی اون به پدرش گفت پدر باید دنبال برادران برم. پدرش گفت، پس برو، باشد که بخت تو بلندتر از اونا باشه. اون به پسرش بدرود گفت و پسر جوان یه راست به سوی مرزهای امپراتوری به تاخت پیش روند. اجده روی پل این بار هرسنگیستر از اجده بود که سر راه فلوریو کاستان سبز شده بود. این اجدها هفت سر داشت. پترو با دیدن اون موجود هراسناک لحظه ای استاد. بعد با صدای بلند فریاد زد. از سر راهم برو کنار. اما چون اجده از جاشت کن نخورد دوباره فریاد زد. خودتو کنار بکش از سر راهم هم کنار برو. اون با آخرین نختار شمشیرشو بیرون کشید و به سوی هیولا حمله برد. اجده آتش بارید. و حلقه آتشین به دور پت رو کشید. راستش آتش، چپش آتش، روبرویش آتش، پشت سرش آتش. شعله های سرکش راهش و بسته بودند. اجدها هفت سر داشت و از هفت سو برون آتش بارید. اسب شیخ ای کشید و از دیدن منظره آتشناک به عقب نشست. پترول نتونست از شمشیر آخته تو دستش استفاده کنه. اون اسب و آروم کرد و از پشتش پایین پرید و گفت آروم باش چیزی نیست. اون افسارو با دست چپ و و تو دست راستش محکم گرفته بود. اما نتونست کار خاصی انجام بده. چون که به علت آتیش و دود نمیتونست چیزی ببینه. با خودش گفت با این عصب نمیتونم کاری پیش ببرم. باید عقب بشینم و اسب بهتری دست و پا کنم. و پشت اسب پرید و از وسط شعله به سوی خونه تاخت. کنار دروازه قصر پرستار و پرورندگی دوران کودکیش بیرشای پیر ایستاده بود که با دیدنش مشتاقانه به سوش دوید. اول گفت آه پترو پسرم. می دونستم که بر تو جوان به کار و درست و حسابی بررسی نکردی. پترو نیمه خشبگین نیمه غمگین پرسید. چطور باید دست به کار شد؟ پیر جواب داد. ببین پسرم تو به این راحتی ها به چشمه پریسه سپیده دم برسی. مگر اون که سواره عصبی بشی که پدرت امپراتور در جوانی سوارش میشد. برو بپرس که کجا میتونی پیداش کنی؟ با به دستو بردنش میتونی با خیال راحت دنبال چشمه پریه سپیده دم بگردی. پترو از ته دل به خاطر این راهنمایی از اون تشکر کرد و فورا درباره این اسب تحقیق کرد. پترو نزد پدرش رفت و در مورد اسب سوال کرد. امپراتور با تعجب پرسید؟ تو رو به نور چشمم قسم میدم که بگی چه کسی چون این حرفی به تو زد. حتما کار بیرشا ساهره پیره. پسرم، مگه عقل تو از دست دادی؟ الان پنجاه سال از دوره جوونیم گذشته. چه کسی میدونه که اسبم الان کجاست؟ سال هاست همه چیزو دربارهش از یاد بردم. پترو، نامیدانه و خشبگینانه بازگشت و پیش بیرشارم. ساهره پیر با لبخندی به اون گفت ناراحت نشو همه چیز به خوبی تموم میشه حالا برو دهنه اسب و تو استبل پیدا کن خیلی زود میفهمم که چی کار باید کرد استبل پر از زین افسار و تکه های چرمی دهنه اسب بود پترو کوهنه سیاهترین سیاه و پوسیده ترین دهنه چرمی ها برداشت و اونا رو پیش زن پیر بود اون ورد خوند و اونا رو بخور داد و بعد همه رو به دست پسر جوون سپرد پیر زن گفت دهنه ها رو بگیر و اونا رو به شدت و محکمی تموم بر ستونای سنگی ساختمون بکوب پترو اون کارو کرد همین که دهنه ها رو به ستون سنگی کوبید اتفاقی افتاد من نمیتونم بگم که چطور چنین این اتفاقی افتاد. اما میدونم که پترو اونقدر مطمبهود شد که نزدیک بود چشماش از هدقه بیرون بزنه. اسبی کنارش ایستاده بود. اسبی زیبا و بی نزیر که مانندش در جهان دیده نشده بود. زینی طلا با سنگای قیمتی داشت. افزارش چنان برق خیره کننده ای داشت که چشمو میزد. به طوری که اگه مدتی به افسار براغ و درخشان نگاه میکردی نور چشماتو از دست میدادی. اسبی شکوه بود با و افساری بی که در خور شاهزاده جوون جوانه بود. پیرزن گفت حالا سوار اسب قهوه شو بعد با اون بدرود گفت و به قصر بازگشت. همین که پترو پشت اسب نشست احساس کرد که دستاش سه برابر نیرومندتر شدن و قلبش چون دل شیر شد. اسب قهوه ای گفت سرورم محکم استوبار بشین. راه درازی در پیش داریم و نباید وقت و تلف کنیم. پترو احساس کرد که اونا چنان سری پیش میرن که تا اون زمان کسی چنین این پیشتازی یا ندیده بود. اجده روی پل بود. اما اون اجده قبلی نبود چون که این بار دوازده سر داشت که هر کدوم حراسناکتر و آتیش ریزتر از دیگری بود اما با وجود اون همه حراسنگیزی با هم نبرد خود رو در رو شد پترو ترس به دل راه نداد اون برای اینکه دستاش آزاد باشه سراستیناشو جمع کرد و دور ماچش زد. اون به اجدها گفت از سر راه هم کنار برو. اما از سراخهای بینی سرهای اجدهها رودی از آتیش و دود بیرون ریخته شد. پترو زبونش خسته نکرد و سخنی نگفت. شمشیرش رو آخده کرد و روی پل آماده نبرد شد. اسب گفت لحظه درنگ کن. دقت کن سرورم. حواست به حرفهای من باشه. مهمیزارو رو محکم به بدنم فشار بده. شمشیرو محکم تو دست بگیر و از هر جهت آماده باش. ما باید با یه خیز حسابی از روی پلو از بالای سر اجدهها بگذریم. وقتی دیدی که درست بالای سر اجدهها هستیم، بزرگترین سرشو با ضربه حساب شده قطع کن. خیلی سریع شمشیرو از خون پاک کن و پیش از اون که به زمین برسیم شمشیر پاکیزه رو در قلاف کن پترو مهمیزها رو به پهلوی اسب محکم فشار داد شمشیر رو کشید و سر اجدهها را انداخت بعد خون رو از روی شمشیر پاک کرد و پیش از اون که پاهای اسب روی زمین قرار گیرند شمشیر رو در غلاف کرد اون با این روش کارش رو انجام داد و یکی یکی سرای اجدهها را انداخت بعد با خیال راحت از روی پل گذشت. به پشت سرش نگاهی انداخت و با همین نگاه با زادگاهش بدرود گفت. باید به پیش میتاخت. اسب گفت درنگ جایز نیست. باید به پیش بتازیم. اما سرورم بگو با چه سرعتی دوست داری پیشتازی کنی. مثل باد؟ مثل گذر فکر از مثل آرزو یا مثل یک نفرین هترو نگاهی به دورو برش کرد به آسمون نگاه کرد و بعد چشم به زمین دوخت در برابرشون بیابونی بود بیابونی که منظره ترسناکش ترسناکش تنش تنشو سیخ کرده بود او گفت باید با سرعتهای متفاوت پیش بریم نه خیلی تند که خسته بشیم نه خیلی کند که زمانو از دست بدیم، اونا به راه افتادن. یه روز مثل باد روز دیگه چون گذر فکر روز سوم چهارم مانند آرزو و نفرین تا اینکه به انتهای بیابون رسیدم. پترو مثل کسی که از خواب بیدار شده باشه چشماشو مالید. شایدم مثل کسی که میخواد چیزی بسیار عجیب و ببینه. بعد گفت: حالا کنارت راه میرم تا بتونم اطرافو خوب تماشا کنم شاید چیزی که قبلا ندیده بودم ببینم بعد به جنگلی رسیدن مسی که درخته و برگاشون مسی بودن درقچه و گلا هم مسی بودن پرو سرجاش ایستا و مثل کسی که قبلا چونون چیزی و ندیده و دربارهش چیزی نشنیده به جنگل خیره شد سپس یه راست به درون جنگل رفت دو طرف مسیرش ردیفی از گلا زبون باز کرده بودن و اونو ستودن و تشویق کردند تا دسته ای گل بچین و برای خودش حلقه گل درست کنه گلی می گفت منو بچین چون که زیبا هستم و به تو قدرت میدم. دم گله دیگه می گفت نه منو بچین چون که هرکس که منو به کلاهش بشونه زیباترین زن جهان به اون دل میبازه. خلاصه هر گلی با جمعه دل فریبانه میخواست تا اونو برانگیزه. هر گل با صدایی دلنشین و ملایم میکوشید با جلوگری شگفتیاش نظر پترو رو به خودش جلب کنه. پترو همه چیزو میشنید و اونقدر تحت تاثیر قرار گرفت که تصمیم گرفت گلا رو بچینه. اما اسب به کنارش جهید و بیقراری کرد پترو با خشونت پرسید چرا آروم نمیگیری اسب جواب داد هیچ گلی یا نچین وگرنه به وقت بد گرفتار میشی پترو پرسید مگر چون این چیزی اتفاق میافته؟ اسب گفت این گلا زیر نفرین و افسونند هر کسی اونا رو بچینه باید با ولوا که همون کتوله ی جنگده نبرد کنه. باز پترو پرسید، حالا ولوا جور جنیه؟ از جواب داد، اونقدر سر به سرم نزاد، فقط گوش کن چی میگم؟ هرقدر دلت میخواد به گلا نگاه کن، اما هیچ کدوم رو نچین. و آروم به راه افتاد. پترو به تجربه آموخته بود که هرگاه به توصیه ها و راهنمایی های اسب گوش کرد، ضرر نکرده. پس به خودش فشار رو ورد تا حواسش را از توجه به سخنان زیبای گلاب هرد کنه. اما بیفایده بود. اگه پیشونی نوشت فردی مصیبت و بخت نگون باشه، پس نگون بخت خواهد شد. حتی اگه تلاش کنه از چنگال سرنوشتش بگریزه. گلا به التماس افتادن و اونقدر رقت انگیزی گفتن تا قلبش بیتابتر و بیقرارتر شد بالاخره با خودش گفت هرچی میخواد بشه بزار بشه به هر حال باید با ولوا کتوله جنگل رو در رو شم میخوام ببینم چه جوری و چطور میتونم با اون دست و پنجه نرم کنم اگه مقدر شده که به دستش بمیرم پس راه گریزی نیست اما اگه قراره پیروز بشم حتی اگر هزار و دیویست ولوا باشن به اونا چیره خواهم شد. و این بار خم شد تا دسته ای از گلای مثسی رو بچینه. اسب قگیینانه گفت: «سخت اشتباه می کنی منم نمیتونم جلو تو بگیرم. پس خودتو برای نبرد با ولوا آماده کن موجودش همینجا حس میکنم. هنوز حرفش تموم نکرده بود که پترو حلقه گل درست کرده بود. همون موقع از هر طرف بادی برخاست. یکی از بادا به طوفانی تبدیل شد و طوفنده پیش اومد و همه چیز اون اطراف و تو تاریکی فرو برد. تاریکی مثل پوچشی سیاه و تیره اونجا رو پوشند و زمین زیر پاشون به لرزه افتاد. اسب با یال لرزون پرسید، ترسیدی؟ پترو محکم جواب داد نه، هنوز نه. اما عرق سردی پشتش روون شد و بدنشو به لرزه انداخت. با خودش گفت، هرچه پیشایت خوش شاید. اسب گفت، حالا نترس کمکت میکنم. افسارو از گردنم باز کن و سعی کن، ولوارو با اون بگیری. هنوز حرفش تموم نشده و پترو وقت نکرده بود افسارو باز کنه که بانوی کتوله ولوا در مقابلش تمام قد ایستاد. از بس قیافش دل آور بود پترو تا نیورد نگاش کنه. جن جنگل کله نداشت و در این حال بیکرله هم نبود. در هوا نمی پرید اما روی زمینم راه نمی ره. سوار مردی بود که در واقع مثل اسب بود. شاخاش مثل شاخای گوزد، صورتش مانند صورت خرس و چشماش هماننده چشمای گربه سفید قطبی بود. اندامش ترکیبی از همین جونه بود. پترو پاهاشو تو رکاب سفت و محکم کرد و شمشیرشو بیرون کشید و منتظر موند. یه شبانه روز گذشت و نبر تنوز پیروز نداشت. بلاخره ولوا از نفس افتاد و گفت بیا کمی استراحت کنی. فترو هم پذیرفت و شمشیر رو پایین آورد. اسب گفت حتی یه لحظه نباید دست از نبرد بکشی. ولوا مثل اسب شیح و مثل گرک زوزه کشید و با نیروی بازیافته به سوی پترو یورش برد. یه شبانه روز دیگه نبردی خوشوند بارتر از قبل در گرفت. پترو به قدری خسته شده بود که به زحمت میتونست دستشو رو بده. ولوا بار دوم گفت بیا کمی استراحت کنیم. میبینم که تو هم مثل من خسته شدی. بازم عصب گفت به حرفش گوش نده. حتی یه لحظه درنگ نکن. و پترو که دیگه نا نداشت شمشیرشو بالا پایین ببره به نبرد ادامه داد. بلوا هم که دیگه توان ادامه نبرد نداشت، فقط می‌کوشید که با احتیاط و حساب شده ضربه بزنه تا بتونه با این کار توانه از دست رفتشو باز یابه. روز سوم همچنان درگیر نبرد بودن تا اینکه آسمونه بامدادی سرخ گم شد. پترو به طریقی نمی‌تونم بگم به چه طریق تونست افسار رو روی سر ولوای خسته از نبرد بندازه به یه چشم به هم زدن ولوا اصبی شد و با یه جست خودشو و کنار پسر جوون رسوند اون زیباترین اسب جهان بود اسب گفت زندگی به کامت باشه تو منو از دست افسون کوتوله رهانیدی اسب شده از تلسم دماغشو به دماغ برادرش مالی. اون تمام قصه و نحوه ی تعریف کرد. پترو رو به اسب خودش بست و به راه افتاد. به کجا میروند؟ اینو نمیتونم بگم. اما به سرعت پیشتاخت و از جنگل مسی بیرون رفت. پترو به اسبش گفت آرون بگیر تا نگاهی به اطرافم بندازم و اون چرا هرگز ندیدم ببینم. در برابرش جنگلی بود بسیار شگفتانگیزتر از جنگل قبلی. درخت و برگاشون و گلا می اون به جنگل نقره رسیده بود. مانند دفعه قبل گلا از اون خواستن که اونا رو بچینه و دسته گل فراهم بیاره. ولوا که در کنارش می به اون هشدار داد اونا رو نچین چون که برادرم هفت برابر قویتر از منه. رو با اینکه به تجربه در یافته بود منظورش چیه اعتناعی نکرد و پس از لحظه ای درنگ شروع کرد بچیدن دسته ای گل نقره ای. بعد با پیچ و تاب دادن اونا حلقه ای گل برای خودش درست کرد. طوفان برخواست اما با غریبی بلندتر. زمین با شدت بیشتری به لرزه افتاد و فضا تاریکتر و تیره تر از بار اول شد. کتوله جنگل نقره با سرعتی هفت بار تندتر از کتوله جنگل مسی یورش شورد. اونا سه شبانه روز دست و پنجه گوبیدن و سرانجام پترو در فرصتی مناسب افسار رو بر سر کتوله انداخت. وقتی ولواتل شکست گفت زندگی به کامت باد جوون تو افسون منو شکستی. همگی مثل دفعه قبل، راه سفر در پیش گرفتن. طولی نکشید که به دامنه جنگلی رسیدن. جنگل طلا که بسیار زیباتر و با از دو جنگل قبلی بود. همراهای های پترو از اون خواستند که با سرعت تمام از جنگل بگذرن و از غیر گلای طلا بگذرن. اما پترو گوشش به این حرفا به نبود، و این بارم با دسته از گلای طلا تاجی طلایی برای خودش ترتیب داد و متوجه نشد که روی زمین چیزی به اون نزدیک میشه. شه. همین که فهمید چه خبره، شمشی رو بیرون کشید و آماده نبرد شد. با فریاد گفت، یا میمیرم یا افسار رو به سرش میندازم. هنوز آخرین کلمه روی زبونش نایمده بود، که ابری انبوه دورش حلقه کشید عبری قلیز بود و اون نمیتونست دست خودشو ببینه یا صدای خودشو بشنوه. اون یه شبانه روز با شمشیر آخته در دست بی اون که دشمنو ببینه نبرد کرد ناگهان ابر رفت و فضا کمی روشن شد تا پگاه روز دوم ابر ناپیدا بود و خورشید درخشان تو آسمون دیده شد پترو احساس میکرد که دوباره زنده شده. اما ولوا کتوله جنگل طلا چی شد؟ اون ناپدید شده بود. اسب به او گفت بهتر نفسی تازه کنی چون که کمی بعد نبرده تنبتن شما آغاز میشه. پترو پرسید این عبر قلیز چی بود؟ و اسب جواب داد ولوا بود که خودشو به چنون عبری تبدیل کرد. گوش کن داره میاد. پترو بیچاره نتونست نفس تازه کنه. چون که احساس کرد که چیزی نزدیک میشه. چیزی که زبونشو بند و بود. رودخونه بود. ولی در این حال رودخونه نبود. چون که به نظر نمیرسید که روی زمین روان باشه. به سوش می اومد بی اون که ردی از خودش به جا بذاره. پترو فریادکنان فریاد گفت این دیگه چه هم نبردیه، کارم ساخته است و ترس برش داشت. عصب قهوه ای به اون گفت هوشیار باش و یه لحظه بیکار نمون و بیشتر از این نتونست چیزی بگه چون که داشت غرق میشد. نبرد دوباره آغاز شد. یه شبانه روز پترو بی اون که بدونه با چه کسی همو بردی می یا به چه کسی ضربه میزنه؟ شمشیر رو به راست و چپ گردوند. بعد احساس کرد که پاهاش بی حرکت شدن. با خودش فکر کرد دیگه کارم زاره. من و امیدانه با خشونت و سرسختی با شمشیر به هر طرف ضربه زد. خورشید از پشت ها بیرون اومد و آب روان ناپدید شد. پترا نمیدونست دونست چگونه و چه وقت جنون شد. اسب گفت نفس تازه کن. بیهوده وقت تو تلف نکن. لحظه ای دیگه سرکله ولوا پیدا میشه. پترو پاسخی نداد. خستگی امونش رو بریده بود. فقط در این فکر بود که چگونه در مبارزه تن به تن پیروز شه. جاشو روی زن محکم کرد. شمشیر رو آخده کرد و منتظر موند. چیزی به اون نزدیک میشد. چه چیزی؟ نمیتونم بگم. شاید هر کسی تو خواباش موجودی رو دیده باشه که چیزی داره اما همون چیزو نداره. نداره دستکم ولوا به نظر پطرو اینگونه میومد معلوم نبود چیزی داشت یا نداشت با پاهاش پرواز میکرد با بالاش راه میرفت سرش پشت بدنش بود و دمش از بالای بدنش آویخته بود چشماش روی گردنش بودن و گردنش جای پیشونی بود حالا چطور میشه این موجود و بیش از این توصیف کرد من که نمیدونم. پترو لحظه ای حس کرد که در چنگال ترس گرفتار شده. تکونی به خودش داد و دل و جرعت یافت. طوری نبرد و آغاز کرد که انگار تازه پا به میدون گذاشته بود. روز داشت رنگ می و توانه پترو رو به کاهش می نهاد. با از راه رسیدن تاریکی اون به زحمت میتونست چشماشو باز نگه داره. تا نیمه شب دیگه توان موندن در پشت اسب نداشت وقتی هم روی زمین ایستاد اصلا نفهمید که چگونه از پشت اسب پایین اومده بود. همین که روشنایی صبح پیدا شد دیگه روی پاهاش بند نبود به زانو افتاده بود و مبارزه می کرد اسب که میدید توان پترو رو به پایانه گفت کمی دیگه مقاومت کن. تقریبا داره تموم میشه. پترو عرق روی پیشانی و با دستکش خودش پاک کرد و با زحمت دونست روی پاهاش بیسته. همون موقع اسب گفت با افسار به دهن ولوا ضربه بزن. و پترو همین کارو کرد. ولوا چنان شیحه بلندی کشید که پترو فکر کرد تا آخر اوم کر شده. بعد ولوا که هنوز نیمه رمقی داشت به طرفش گیز برداشت تا با زربه آخر کارش بسازه. اما پترو که حواسش جمع بود از فرصت استفاده کرد و افسار رو روی سر ولوا انداخت. همون که روز شد سه اسب در کنار پترو یورت می رفتند. ولوا گفت زندگی به کامت باشه جوون. تو تلسم منو شکستی. حالا چهار اسب در کنار هم چهار نل به پیش میتاختن. شب که شد اونا به انتهای جنگل طلایی رسیدن. پترو به تاجای جای گل که خودش درست کرده و به اسبای ارزشمندی بندی که نصیبش شده بود فکر کرد. اون با خودش اندیشید حالا این همه چیزو برای چی میخواد؟ باید بهترین اونا رو نگه دارم. بعد تاج مسی مسیونق رئیو در درآورد و دور انداخت. اسب با فریاد گفت سب کن اونا رو دور ننداز. شاید به درد کارمون بخورن. به پرپایین و برشون دار. پترو از پشت اسب پایین پرید و تاجای مسیونق رئیو برداشت. همگی به راهشون ادامه دادن. شامگاه با فروکش خورشید در پشت کوهها ها دست به کار شدن و وزوز کنان به جولشون افتادن. چشم پترو به درختزار وسیع افتاد که کنارشون بود. همون لحظه اسب سر جای خود بی حرکت ایستاد. پترو پرسید: «چی شده؟ اسب جواب داد احساس می اتفاق ناگواری در انتظار ماست پترو پرسید چه اتفاقی؟ اسب گفت داریم به سرزمین ایزد بانو و میتوخ وارد میشویم. اگه کمی دیگه جلو بریم همگی یخ خواهیم زد. در تمام طول راه آتیشای بزرگی برافروخته. و میترسم که تو بری خودتو گرم کنی. پترو پرسید حالا چرا نباید خودمو گرم کنم؟ اسب غمگین جواب داد اگه این کارو بکنی برات تو اتفاق حراسناکی میفته تو هم افصول میشی. پترو با خون سردی گفت حالا که اینطوره پس به پیش. اگه قرار گرفتار سرماشم بزار بزار بشم. آتیش بی آتیش. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها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 ادساین مهران دوستی